مسیر رو ندید تا جازبه های رو دید. بعد و مسیر اوپیاسی رو رسید تا بیس اجازه به های گردشگری رو ان خواهیم الله خواهید، فردا بعد از ظهر هم دو تا وایده توریدی تو دوسته وایده مثل هنرای طراحی و تور گاندو و مجموعه گومگدی رو در مسیر برگشت از شکوه توی برنامه بازی قرار دادیم سعی کردیم در این زمانی که داشتیم اون ده ها و پتانسیل هاییو که داشتیم معرفی با خود خوبنده عزیزان اشانا از ذرفیت خبرگذاری ایران و مجموعی محصف مرنگی ایران استفاده بکنیم در راستای معرفی ذرفیت های بیجه ای که اینجا وجود داره تا هم مردم آشنا بشن با این نقطه و هم از ناماز و وحالیت های دولت در این نکته به طبال رو به تصمیم پیران تصمیم را من میشتر از این مستده و میشم خدمت جامعه بیشون رو سکول هستیم من تشکر میکنم از ایشون و همراهانشون با همه وسته امروز با گرمه هوایی که داشتیم. همراهی دردن با بایداری با که بشکرم بیشون <تصفيق> <تصفيق> من تشکر میکنم خیلی میکنم از بکنم دقیقه شماست. بسم الله علیکمان الرحیم. عرض و سلام و عدد برم شما رایی که خیلی سپس که بستروفه که بنده به مجموعه همده هم بپرسه که از داشته روشیم و همونطور که حفظی زدن مابان خیلی کاری است توشونی که به کابلی خمول و افتخاری در این موقت اینجا شده هم کشون در تهران هم در به جنابالی بودن رو بکردیم منطقه 14 منطقه بسیار استراتژیک و مجموع هستن سراسر منطقه و در اون هستش که اینجا قرار بوده که توسعه پیدا بکنه بخشی از بار ترانسید کمال برد این رو در اون نقش راته ولی به درداری مختلف در طوله توسعه نگفتنه بخش های با این بردجه از مسائلی که مربوط به توتعی کشورها یا موفیها یا بودتها یا, یا هایی که با پیشرفت چابهان به میشدن یا دراده های دیگر این محارب نمی شده اونه شد تو دولت های روحانی با توجه این تو من خودم از بودتشون از در جریان بودم که Oh, good morning. هم با توجه به شنافتی داره اما با شنافتی که امیگی نیز با دفتون شنافت اسمی که دامن می که این هر پا که با از جوری من میشه بودش کنشه هر سفت هست و چه فرکانوییتی و فرکانوییتی امروز فرصت خیلی خوبی بودن من شایدی که امروز هم داده خدا بزاریم و اصلا می‌ماند و اینو که دنبالش شدیم دارن از وحدت هر کشور سفر که Yeah, sure. to mm the -hmm. 재미 temos شرایط تقریمی و زبن انسانی که به قرآن دولت آمریکو برکشور میکنم کرده این ظرفیت رو بیره برای تبدیل این دسته اولیکا مرگونی ما بیشتر دونه دیگه و جبه همه این شرایطی سختی رو برکشور بده هستیم حرکت میکنه و یه مقدار من بتونیم وقت خلق باشیم و رویه بدیم به کسانی که تونیم خط مقدم با هم دارم تلاش میکنم من تو به نوبه خودم تو همین روشان که از صبح رفتیم با متولیانشون و مسئولینشون صبح رفتی و اون فرض رفتی هستم تو بکنم که کارشون واقعا کار مقدسی است جهاد واقعی رو اینا میکنن کسی که بالاخره یه ملیار دو ملیار داره چه برسید؟ که اشتاد میدار سر ملیار دور دو داره همون یه را اینو میذاره تو کار اشتغال زایی کار آدم سرم نمیداری میکنه سیاری از این فرور ها بزرگترش الان جسایی حاضر هایی هاییی هایی هایی هزاری نیستن بیارن توی مسیح اشتغالزایی برگذارن و برگذارن روارن توی بانک ها بذارن، روارن توی بورس روارنش رو خرید باشه عرض و ترده می باشیم کار بی درد سرکرهایی باشیه درگیر دقانین زد توسعیی هیش من نمیشن ازا از در قوانه رو که این تصویل صلیم گوزاران باز بشه بشه یه مرکب که آفان رو سریع همین پیش برد در همینجا ما درگیر صلیم گوانه رو اصلاح کردن که گوانه دست کار گیره و سریع ما برای اینه که بتونیم طول قانون گوزاران رو که گوزاران از طریق کنن از در قانون هستانی تحصیل گذار باشیم که تشکیمشون کنیم که, بکنن و کنن و از نوع بکنن که این قوانه رو تا که در گذاری و شما مفرینی بکنه خصوصا درموان پرنز بکنی بسانست سان و اشتماع چاوان پرنز این خوشقدم هم سپاس بزاری میکنم از چنانگاهی چنانگاهی شدیلی، چنانگاهی کیانس هم سر که ما میکنشون هزم میکردم همون نیز در موجه. خیلی خوش آمدید هم کاری که اشاره در اشتر بیجهی قنار داره و تقریبا هموندر فرقا شما که پروشه های بیجه و مهم دولت حداقل دلی دول در این دوره بوده و همونطور که قبل همونم خیلقا چما رو کردم کار خیلی زیادی هموندرین دوله انجام شد. اما رو در اینکه بودتن ماجرای شاپ ماجرای نظام است توجه از که مقام در به خودم و همکارم همیشه میگم برخواه یه توفیحیست برای ما و یه می که ما پرستت پیدای کردیم و دوست در جای کار کنیم که هم این و رفت توجه مقام معظم داره و همین که در این دو مهمترین برای کارها به خیلی زیادی انجام بده بودنیم برای کارها به خودمان ما هم سهب برکردیم با فرصت برکردیم و خدمت بزاریم این مردم باشیم یه بخشی از موضوع موضوعات مثالی در مرد شابه شاید کمتر باییش مردم و هر آجوری که اینجا کار بوزن بود کار شده در بیشت بیشتی بیشت. آسر شده اتفاقی یا برام چیزی از زمین اومده بیمون واقعا در درنج خیلی زیادی داشته من خاطر از در یکی از سفر بکست درانی اومده در پرواز موندی بروشه یه دارم. ماشنه بود و دارم. گفت به من که من این که دارم بودم چابه ها همراه خودم داربست بند دارم میبرم. یعنی می داربست بند که ساده تری میدار پیش پرخ داری کاریست که میبرم. در شروع دارم. در شروع دارم. موضوع مال شهار سال قبل هست. در شروع داشته شروع می کردم. موضوع مسئله نشون میده که بعد کساییی من اینجا تولید میکنن که من اینجا کار سمن میکنن در بزاری مورد بجای بزرگی مثل بندر شهیده ایش کار فردا به واقعا کار بسیار بی نظیرم عرضش من ریستی که در, در مورد دولت هست همه اینها با همین مشکلتها با همین گرفتاری ها از اون طرف هم قضای بینون بگنیم و خیلی خاص و ویژه هست که ما در شرط میکنیم که در گروه ما، منطقه ۱۰۰ ها در اون ما و و راهبری داری یا مثلا در تو کار میکنه و دیگران ما از خود منطقه رو در اونجا دارم کار میکنیم یا در پایین کرش در اون در اون روزه در واقع منطبازه جدیدی که از سای دو هزار هم شروع کنم که فقط یه نقطتش یکی از سایت های مشموع هستون هایی شما رو بزنیدیم بازید داشتید این آوره 14 هزاری اینجاره است. هست در, در دوم فقط یک دونه از سایت های دکر ده معادل سایدی پیروشیمی که این داده بود به شده سندگاکولی برمانه دولا کردن چیست یا حرفهایی که در قوادر میشن میگو که از نشت... چرشش به دردار را هم هاست برای اون از آشوارو احزا بیچیم من به بادر پاکستان، تو بادر پاکستان تا چاوار دیویس که این نشمه ما در یک خضایی قرار داریم که مثلا هم با گروه دیویس مایی در دیویس مایی در رویی در رویی ما سوکار در و در دیویس که این نشین شهر شرد هم دوم هم به پرشید قرار داره و ما هم دوم. اینها این ها هر سه مناطقی هستند که در یک و مقیاس بسیار بینومننی در حال توصیح هستند برقا چین همه از دو همورا شده است در توی واده و یک منشکاری این تعریف تعریف کردن در توی این در واقع مقیاس حالا باز مطمئن منطقی نیجه خداوند دویه. نعمت جغرافی ها رو با هر این سه منطقه که من چابه ها رو مقایسه می کنیم مثلا مزید های رقابتی چابه های اصلا رو گردن است تا این ها همین بالاتر است. ما در یک سفری بود به کامسه چهار سال از هم در بودیم رفت بودم. منی بندر صبح یک پریزنتی رو بودم. یک چند تا رو خیلی سری رد کرد. توضیح ندادم. ما خیلی بود. Thank like you. سوهار و چهار هاید. ما در مجرم سکرشون. من شما باید چه این حساس صحبه هاید. خب چی بودت و به پشت سوهار چه میلیون نفر آدم هست. با سوهار و چهار تقربه هم بیشید. مثل همه. یکی در جنوب در امان. چهار در شمال در امان. هر دو در پشتی دوره در اما پشت سوهار چه میلیون نفر که خلیه که شده که پشت سر چاباها شیشتن تا در میدونه در آدم هست و ما هر کار بخار بکنیم هر اتفاق بکنیم ما باید یک پر بکنیم خیلی دلیم و چاباها برقرار بکنیم این موضوع که ما در آینده باید اما دو سیاسته مجموعه ما مذاکره مز مجموعه چاوار پیش حالا در همون مخته واقعا مدارد شد بکنی خوب هم بیشتر بیدن مارده خیلی زیادی صورتی رو بعد از بازگشت موج موجه و ها و ارواست یک داری متوقع شده تا این جغرافیا استراتژیک و مهم هست که هیچ کس نمیتونه حتی جدی ما در منطقه نمیتونن و از بازار پشت به شما از افغانستان حساب کند آسیا میده روسیه و شرق اروپا با وصلن عراق و خود ایران اینا حدود 600 و نزدیک ندیگه هفتر میدونه آدم هستند توی چیز هم پشت سوهار دیگه در باقی از شما از کانل سویزی بودی بودی در باقل مندب رو همین عراق رو بخوایی حساب نه همین چیز آدم هست. و مثلا این به لحاظ فنی اینه یعنی که شما هر کاری که بخواد بیاد در سوحال بشه اگر بخواد که برای همون محله فلات فعال بشه یعنی پشت سرش یه بازار چه میلودی داره و اگر بخواد بازارش رو توسعه بده یه تخریب ورگیری دیگه می‌خواد تا بیا در تا چاوبار بین بازار دسترسی ایجاد کنه بنابراین ما یه قدم جلوتر از سوحالیم، حالای که از اون وقت ما به لحاظ دسترسی به بازار یه قدم از سوحال جلوتر و عملی پیش‌بینی رو کرده بودن که باید باید. تقریبا میشه گفت به لحاظ در واقع نوع ارتباط چه شرقی غربی، چه شمالی، جنوبی اصلا خود ایران نقشش این نقش ترمینار و یک نقش پخش کننده و توضیح کننده در این در واقع جورافیه مهم است و اهمیت بیجهش هم به نظر من در واقع نوع دسترسی و اون بهینه کردن فاصله بین بازار هاست تو بازار خیلی مهم در مورد داریم هم انرژی و هایی که ازش داره صحبت میشه که آسیای میانه خب در واقع روسیه و این مناطق اگر بخوام بگم دیگه از آسیای میانه و خاور جنوبی و این مناطق آسیای فرقیه و هم شرق در واقع آسیای شرقی این سه وقتی در داره نقشه ترسیم می‌کنه شما می‌بینید بهترین جایی که میتونه اینا رو به هم وصل کنه نقش نقشه رو ایران داره و خب به حال نقطه اتصالشان با ورودشان مثلا تو هم چهاروار هست. همه اینها باعث شده که به علاوه هم هند، هم چین، هم روسیه، هم ژاپن، هم کشورهای اروپایی که به حال در منطقه بازار تا داشته باشند، یه نگاه و توجه میجه ای رو برای آینده در این منطقه داشته باشند. ما الان پروژه مهمی کارا نهای ارز کردن فضای خاصی که الان توش قرار داریم. مثلا هلندیا به شدت معتقدن که های گمرکویشون رو باید در چهاروار توسعه بدن. ورخونه کمی تبی هست 15 تا 20 درجه متاسف پای در مدارک نهایی و در چوار استایبیده ورخونه کاملا تبی تنها ورخونه‌ای که در چوار بود اساس چیزی که استفاده می یعنی پردهی سفت که فقط مخاط صاحبونه که مانع ورود به داخل ورخونه بشه یعنی که به حال یک بسیار ویژه هستن با یک پروژه خیلی مهمی داشتیم درصاد با با دارس ما هرند که بزور طبی بردم از بازار در دنیا در اتصال این شرکت است این حتی تجیزات هم کار داشتن و استراتیزدر به این این ها را تا برگرد که شدتی باشن شن. یا در برنامه در باقی توسعه استراتژیکی که چین برای خودش تعریف کرده یک برنامه در تو برنامه می‌سیشون و در مورد تأثیرشونی که قدرتیه یک پتروشیمی دوم نابشم و در اوج پیش بیای که در اوج پتروشیمی باید چه کار انجام ولی یکی از کارهای اونجا مطالعه کردن و یجسیدن داشتن یک سایت پتروشیمی در منطقه در منطقه خاور آسیا. که مختلفی رو بررسی کردن. حالا من دو سال مطالعه کرده‌ام که اول 2000 و یک ده و آخر ۱۰۰۱۰۰ مطالعات در وقت نتیجه نشست که در آخرین سنبایی که حال موقعی حضور جمعه انتخاب کردن و موجود تفاهمان بود شاوار بود که در وقت فیدراسیون نفت و گازو چی به حیالی تا شرکت که مثلا یکی از شرکت هاشون در اندازه تمام معلوم شرکت پتروشیمی ما بود تا از شرکت ها آره برمان حجم عظیمی از سندگیزه رو پیشمی کرده دارن که یه برمانه استراتیشیکی بلندت برمان رو داشتن صحبت میکردن کردن میگن که در همه نگاه ها و این های استراتیشیکی که برای دو 30 ساله دارن برمانه برمانه استراتیشگی کنن برمانه استراتیشگی و بلیژه هستن برمانه بیشتر شغل‌ها رو که اونها هر چند می‌جیند که دوست دارند بیرون بیاین که این که این که ۶۴ همین کشورها به خاطر رو می‌آورن یکی از باز مجوزاتی خیلی دید رو به نظر من خاص و میشه کرده. در اون دوره توجهات داخلیه که نتیجهش تکمیل زیرستاخت میشه. بوده ایشون هم گفتن چون جزیره است نیست که تیشه بزنیم مان می‌کنیم مون تا 4 سنه داشت سنه یکی از پیشنهادها و خروجش این بود که در 4 منطقه آزادی ایجاد بشه که این منطقه آزاد نقش رو ماقمی کنهش امپاج از جنوب و دریا به دوره در موقع شرد ما از 4 به خاطر اطلاعات امنیتی اون و, و اه... یا اساسا شرق کشور رو بخواد. فعال بکنه یکی از پروژه مهم چابه ها بود و در برقای اسناد وجود داره سال 62-63 بود در واقع مطالعه شده و بعد داره دو سال 72 تیم در شروع شده بود سال این سند قرآنی سند در واقع قرآنی تره مطالعه شده رفت در مجلس در کنار کشبش برنامه منتخازاتا برنام تصمی شده اونتا دو دوسته تا ظرف اساسی داشتیم یکی از بحث اصلی که همون روزها داشت، ما راجب در واقع منجین توصیعی همونه و ترازید شرق از چابوها در اون رو روزها صحبت کردیم منطقا نه جا گذاشتیم، نه راید داشتیم، نه بندر داشتیم تا در اون روزها به این ما اصلا این توسعه ای کوریدور در واقع شرق ایران در کوریدور جنوب شمالی که اینا رو به هم بحث میکنه باید مثلا از منطقه آزاد چابوهای شروع بشه. تازه هم موقع من آنجا کردم از بازار چهار رو از مثلا کنار بندر پایانه بندر یه کنس کشیدم احتمالاً اینو من تو بندرم جدا کردم مثلا اساساً ها مون ما بوده خب با این به هر حال گرفتاری‌ها تو سال گذشته خیلی فراز و فرود داشتیم و همیشه هم صحبت از توسعه شهر و منطقه یکی از که به همه که شما چوار منطقه آزاد هستید شما نامحترمتونید یعنی دلیل دلیل نامحترمی که شرکت نپرسیدن شما به مدت توابزاتو و پدر ولی چوار تنها منطقه آزادی بوده که در تمام این ساحل رخ قرم از عمرش گذشته ولی حتی یک مرز نداشته نه دریایی دیار این زمینی نه آزادی خب این چه جور منطقه آزادی که اصلا هم میان و منزلت مناطق آزاد و خروج در آسان هست. بعد شما وقتی مرز ندارید اصلا خروج به شما معنی بدانی میکنه بعد التزامی داریم که مثلا حالا برا هم وقتا وقت دوستان صحبت میکنم یعنی وا صادراتی که چند ما ارزش نداریم از خود کنیم یعنی موانع اولیه در واقعی این رو هم ندیدیم. باز یکی از اون اتفاقات مهمی که من به نظرم میاد در طرح خیلی کم گفتیم و میشغال از ما بود. یعنی تو سال گذشته تو همین دولت مرتفع شده یعنی در که ما اون در توسعه توصیه بندن برمان این قدم و اولین هسته به پار بزاشتم سرزمین مون بود و دو سال پیش برداری شد قدم دوم رفت این موانه توصیهی خود بر منطقه آزاد و بر احتباطی به این بندن بر و منطقه آزاد که هم در سال گذشته داوق داد از این بار میگم که ما کمکاری کردیم پرونده پرونده پرونده تقریبا 15 سال است و گذشته به نیسسی و این نظر من باز هم از دست مهمی بود که در این دولت در داشتیم و من مطالم برشاش خاص بهدادش از سایرشون بود و برها اون حساسیتی که در دولت ایجاد کرده بود خود در ارتباط با نظر مح در اتوس کشور بود. و مسائلی از این دست منجر بینی شد که این طرح بهنا به تصویر بره به نظر من کار خیلی بزرگ بود من نقشه که مراحظه می‌فرمایید در واقع ناهی قرمز رنگی که اینجا محصول شده این هست، اون نشده که منطق آزار چاواهر نوشته، اون هست و از همه مهمتر بازی یک اقام استراتیجیکی که در این طرد توسته صورت کرده، این ناهی هفته در واقع در نقطه منفصل منطق آزار چاواهر هست در مرز رسمی ریندار بریندان تا منطقه آزاد ما 130 کیلومتر فاصله داره تا گوادر پاکستان 70 کیلومتر فاصله داره مستم. و یک در موقع مرکز و پایگاه بسیار قوی و نیمون خواهد بودنی که با چند چینی ها و هم پاکستانی ها مستم. کار میکنیم این ها به حال به نظر من شاید در عمل کسی به خوبی قانون متاسیم واقعا قانونی هست که اصلا قوائد بازی و قوائد رفتاری منطقه و حتی فعالیت های منطقه رو در واقع تغییر خواهد داد. من فکر میکنم به موزه به من مهمترین دولت در چابهار ها بندر بود یا نمیدونم راه آهن هست یا این یا این برژه که در کار چون من میگم این تر توسعه چون بزرگترین مانع در واقع منطقه ان عدم یکسانی و عدم یکپارچگی مقررات رو با اینترت توسعه انجام شده یعنی این است ما در یک واحد تولیدی در چهار واهله کاری و میخواست قادر بکنه از بندر کلانتری که دقیقاً در میذله منطقه خارج میشه در در سمت راست بندره و یا از بندر بوسی که حدوداً مسافت حدود 800 کیلومتر فاصله داره می‌خواست از این به یکی از این پروتکونا پاسادر بکنه برایش از نمیکرد که اما اینکه خیلی از تولید کننده های ما از بندرنباسی نید چهار تولید میکردند منتصاداتشون از بندر انجام میداد چرا؟ چون این مقررات دوگانه ای که وجود داشته این تفاوت رویه گنگروپی که استلاما باید تقیم کرد وقتی که از گیت ما خارج میشد دیگه از اینجا تا درمین کلاندری و از اینجا تا بندرنباسشی ای که بود از کرده بود. باید انجام کرد و خب این به نظر من اتفاق خیلی خیلی بزرگ بود ما کمکاری کردیم در افتاد با افتاد بیان آثار این و آثار اقتصادی که این اتفاق مهم در این دولت داشته و یه موقتی هرچی به نظر من بوده تر به اقتصادی و اتفاقات که در خود خب البته مسیر اجتماعی که باز هم جز منبولیت مهم منطقه است که مخفول بوده به شما یه درمخور بازه سانم بهش که این احراف من داده نگاه می به رفق محروبیت رو نمی دیدن با تا تو معمولیت از و باز در این تر توسه ها که با یوسیف فرمونیسی مبینی ببینیم. شه شراعی مفردستم و شه شراعی چاپوها رو در کنار ما چه اتفاقات ناکبار و ناخوشایند که واقعا در این همه ما مدیرانی که در چاوار بودی ماهی شرمند، زنوار شرمندیوی هست رو هم نشاهرش بود که اون هم باز موندیویس به نظر من از این من همین همین تر توسته در اینکان فرامانشون همین با ما بود کنم از مسکت ها شروع که با مجموعی کردیم اتفاقی این از بیر امونی که چند را یک ناجوری به و به توصیم به اختصال در را را کرده این این هم در درونه کشور پایین مقیاس این, این اتفاقات همی در واقع سیده فروتگاه که یعنی شروع شده, شده اه، اه، و خوب بایا شده بود که بشرفتی کنه و کار میکنه اینوز دوستانی داشتم با همین پرواز با هم مدینه تیمه در رای کنترل فروژه و اجرای فروتگاه بودن که همجه از صحبت میکنم دارمی بودن ما به همونی زمان بندی را از ایش نهماه چهار درمان کاهش کنیم دنباره پور باشیم که اگر بتونیم پوره رو برس در تحبیر میریم و حتما افتاده با خود این یک رکوردیه در من بود که های که در واقع مامون هم ترانسیت ما هستن از صاحب شرکت فرودا ها و دارن ایشون باز مساهده بزنیم بعد ایشون صبح صحبت کردم من خیلی برشون کامنتم بذاشته بودم که دوازده ماه تمامی میبرم این حرف های پای خودته و ما ارتباطی نداره. ولی در مسئله در هر صورت دیگه خدا به حال همه اتفاقاتی که من فکر میکنم با همین هماهنگی‌ها و هماهنگی‌ها و یک بار شریانه و اراده ها و اراده و اراده های عمومی در واقع دولت و اون برنامه‌هایی که موثر هستند بوده که ما من تعبیر خودم از این اتفاقات چون برور من خیلی سالها پیشم با عنوان شهرون اینجا رفت آمد میکردم شاید 20 سال گذشته شعبار این روحت رو من تو ذهنم تصویر دارم و اون چیزی که امروز تو این چند ساله و تو این دولت من از شعبار دیدم تصویر من اینه که یه چرخ توصیعی رو اینجا به سختی در همین سالها هایی میخواستیم حکی از اینجا اون بدید در حده مثلا حد دور کامل ح و دور توقوم میشه این چرخته داره ای سرعت میگیره و سرعت میگیره و به داره راه را میفته حس من نسبت به موضوع چاوار الان اینکه این چرخه الان درقوم درخت داده که دیگه کسی نمیتونه جلو دارش بشه مانش بشه و چقدر خوبه که همه کمک کنن هم اما که این چرخ رو غیر خودش حرکت میکنه هی انحراف در ایجاد نکنیم و مسیرش رو نه ناهوار نذید اون نذید این چرخه داره صورت راه خودشون میره و, و مسئولیت همه ما اینه که همه کمک بکنیم که با این با به هر حال صولتی در همون غ صیر خودش شان کرده همین اتفاقات باز تصویر چابار رو نسبت به بییرونی ها موض کرده من میدونم اونجلسه کهناداری کردنیم و نه توی این دو سه سال گذشتهی اتفاق متجنبهشه خیلی خوبی هم در روسیه نسبت به این کوریتو شماره به جنوب ما که جور به شما رو هم و اصطلاحاً نوسترال که در واقع معروف هست صولت گرفته و بسیار مصمم و جدی روسیه که ارتباط خودش رو واحد از ایران برقرار بکنه خودشه یکی در مورد کتانسیل رو زرفیه و امکانی رو به ما میده که وقتی این مسیرها رو افته اینکه اصلا غیر قابل حسب شدن، غیر قابل ندیده شدن هستیم مسیری هم کردن رو تحضیح کردن از طریق آستارا خوانه هستیم روزرین که در باید دستور کار باید شده اینا همه در اون مجموعه اون اتفاواد ایست که در مقیاس بیمون میرنی برای ما برنامه ایسی و ترداری شده را ما هم خوشبخت دانرم در اون موقعیت قرار گرفتیم که بتونیم از این زرکیت بیمون میرنی درست استفاده بکنیم با هم یه سری برخال ایرادات و زرفهای وجود داره که اما رسانه در باید یک زبان یا یک سیگنالی رو یک فارسی رو همیشه داره میفرسته یک زنی هست به ما که حال میتونه کمک بکنه ساین بده به ما علامت بده که ورحال این مسیر چطور داره حرکت میکنه یعنی من همیشه این رو اصحاب رسانه و درواقه کنان اسطلاح ها خواهندگارا بار دوم توسعه یه دو بار توسعه همین تلاش ها و بعد حال مناه رو بهمیم کنم هست یه بار دیگرش که میتونه این خوب تو مسیر خودش حرکت بده همین رسانه و درواقه هزای رسانه این که کمک میکنه در مورد شرف توسعه که حیات مردم و جامعه و فضای عمومی رو باشکم همراه بکنه روان کاریش کنند. اون روان کاری که بر قبل سال انجام. نجام باور و اعتقاد اونم همین هست که آب و هوا نیروی مانیتوری ایران، یعنی توسط انواع دولت که از و به دولت همیشه هستند. موارد دیگر نگاهی که و تخصصی رو هم به لحاظ خود در حالی تحسوسی دو رسانه دوبار می‌کردم و به یه جایگاه بیجه‌ای در همه رسانه‌ها در کشور دارم خارق از اینکه به اتیکت دولتونشون هست اما برمان این رسانه‌ی گرفته‌ایی همیشه در هم مورد احترام بودن و هم همه قذیرفتن در برمان قاعده‌ی در برحال ما قذیرفته بوده و هست. طبیعتاً، برقار، حتی اولان چیزی که من در, در این مدت کلتای خزوی جنابالی در اینا شاهدش بودیم من بطمئن هم در دوری آقای فاشمی و همگرد از اون، خوب اختباطت خیلی خوبی ما در همین زمان آقای اینا داشتیم منطقیم در واقع توجهات تخصصی که جنابالی و مباحث بین الملن دارید انجام میدهد در خیلی ضرورت و نیاز این کشور ما در این فضای مسموم ناجوان است واقعیتش و هم با اکه برنامون ارس کردم که برقمی که برخار تو این چهتنده ها بدون این رو قشنگ و هم بکنه به درستی عمل کرده و میفتونه عمل بکنه برد با چابه با این ویژگیهای های و با این زرفت هایی که کارهای بزرگی انجام شده و حال تمام تخصص و تجربه ای که امروز در مجموعه ایرنام و شاهدش هستیم و انتقاد و باور هم بهش داریم اطمینان دارم که میتونیم توانیم بزرگی رو انجام یه روزی یکی عزیزی بود داشتیم موضوع موضوعی صحبت می کردیم هم داشتنی که از بعد ما بفتیم اینا چرا نیگیم ما چیکار داریم اینا داریم انجام باید به روخ مردم بکشن اون هم خود کردی که وظیفه به روخ مردم بکشن چی نظام بوده تو کاربازار نظام بوده تو وظیفت اینها رو بگی. تو داری خیانت میکنی به نظام تو باید اینها رو بگی تا در واقع امید در مردم ایجاد بشه و اون اعتمادی که بین مردم و در واقع نظام هدف و مورد نظر هست اون رو ر این در واقع همین ماجرا ت م از اون روز واقعا نسبت به این موضوع هم حساس شدم هممیشه فکر میکنم راست میین مثلا ما این همه کار داریم میکنیم خوب برحال مردمی که حالا در سیستان و سیستان شرایطشد خیلی بشکر ست برهال ققر تاریقی بدفاصله از و برال کمهارهای که در گذشته انجام شده و خوب کارهای خیلی زیادی هم در انجام شده منتو تخصیص منابع ما و گرفتاری ها به بوده که این فاصله بین سیستم و بروچستان و سایر مناطق کشور هنوز یه فاصله مناداریه و این مردم هنوز با یه نگاه و برکار آقا تدبیسی هست یا فاصله هست یا کمتر کار شده یا کمتر شده است. خب این همه اقدام ارزشمند نظام را اگر ما نگیم و این مردم آگاه نباشن از این کارها خبیم برکار کم بطری و در این باز حساسیت همون در حاضر مسار ما رو بیشتر و در حساس تر می کنیم من آید تو باقید حضور جنابانی رو در محلی محلی محلی تو برست هندگه واقعی در تاین دولت و اتقاانا نظر من خیلی مهم و استراتیجیک من فکر بکنم خیلی حضور جنابانی و همکاران و خانباده در از دو قوم خدمات که دولت دهید بودند چون بدارو بتونیم باقید که جمعانی محلو بودند درشت خیلی طولانی مفتومی بسطورت که نما واقعا همکاران ما زد نکشیدن کارای زیادی هم وزارت های مختلف دولت دید که ما رو در حال در خوب حیلت دولت میده در حال جدید که نسبه بیل مسائل زیاد بوده علوماتی که من قابل خاطر با بیان نیست. ولی در هر صورت ما با تلاش می‌کنیم که ان شاءالله مسیر مسیر هموار و مناسبی برای عزت و اخلاق و داشته باشیم. حسین، به عكس شما، درباره تبعات ها بعد خصوصا در مورد کلی صحبت بود قانوني و الان از شما که نشمندم. اول دوست دارم حالا از آخر شما دوباره اول صحبت بکنی باز ما خدمت شما هستم. همکنران ما دوستان اگر کسی هم داره خدمت هست هستیم شای کرزی هم عوض و مدیره ما هستند و هم معاونه فرحنگی اجتماعی و گردشکرین و یکی از باز اقداماتی که دن زنم برای منتو آزاد خیلی مهم بود به پرمندی این پرونده خوب مطارقه خیلی بو انجام دادن آیه شکل زید خود پروفند من در چند آوزه بایدیت خوبی پرنده so درست درست هم هستیم، نشکنش رو مانگوزی روزند خواهرانی در دست اکباس از این کارات بزرگیستی، و افتحال محسوسی مانگوزی داشتگاه خواهشو در اون فاصلی که آنون در میند ملات این نشکنش هست هست که داره به میشه. برای جده نشاط و شادوی در جوان جوانان اگر داره که سال بفروش مدرسی که ما اینجام دادیم در طول شاید نقش سال بزشته هلو فاییته برای برزش به جوانه، در پروند شهرستان چهار باید و فانهاره جیز در حوالی 20 دران چند مستویه راستایی بکیم مدرسی در طول در, در طول درستان ما در طول اینکی پاییم بزشته نقواز و آتا آشکر ببرید محادثی که در چند از درسال در در ورزی ساخن آتیم همه کنم داریم و رو به شواند سدگردنی در محادثات به onde o departamento de fototerapia está na nossa especialização. Eh, nós iniciamos isso o مرکز شامرو، سزاروگوی مارکس شام، مرکز زدیستوای، پوزیو، آبادیکیپور، آسیبی مارکس، آذربایجانی، کتالوگ، آبی مرو، آمن، یکشنبه یکم آن روزی زیست، آن روزی آتش شدی، آدم مادرم مادرم مادرم مادرم مادرم مادرم مادرم مادرم مادرم مادرم اسه زور Uh, that با استعداد سالیانه برای فردشتی 11 نفر در فرمخته این 1235 نفر 140 نفردانش آموز دارید اینا امودتاً بچه های یا یتیم هن یا ورستایی هن که حتی یک بارم خواهشون شهر باز نشده هم و چقدر استعدادای عجیب کردیم یعنی الان نتایج آزمونهاشون رو مکنی نگاه کنی اینا دا مثلا یزرک میگنه من همون دور اولی که بچه ها سال آبوده شش بود که کنم دول اول یکی از این بچه ها سندشریف را کنم شده الان داره سندشریف درست گفتن که ایشون میکنم صحبت کرده که اگر من نمی اومدم توی دلیل سالانی مختلف بودم اینجا درام بود بعد از اینکه می با دایی برم از سر روی کارگیری کنم تا سیزده از این ها الان را را را را را را را را شدن را را را را بعد ازش رو پستم چرا کاری کردیم؟ برای برید ما معلم نداریم خواهی معلمش و شما آثار بلند مدت همین اتفاق رو پاید بدیویید که چه آثار اجتماعی داریم و اینا همه کاره بوده که مخبول موده و به نظرم توی این دورت خیلی خوب شده و جای پرداختن خیلی خوب هم بهش وجود داره و ارکان آثار زنما تو تلاش های همه هم کاره ما هست و که در دولت. من یاد و جادر منم و ممنون و تشکر می‌کنم از اینکه تو کار این موضوعات حساسیت داشتم. بس داشت خوش مدرسه شروع کرده بودیم hey, هر دفعه من زنگ در برای از شرکت مدرسه عکس می‌گیرم من مدرسه گفتم اون چیزی و حیاتشو بزرگ ببین بچا بتونن بدو بازی کنن یعنی اصلا یه دفعه شیشه سوغردش میونه زنگ ده دیوار دیوارو مدرسه چی جو <تصحیح> و هایی که وجود داشت واقعا اه... بله <overstire> <بهل> <بس ورسیات انتضحقه> در هر صورت حالا مجموعه موضوعات و مسائل من, من نخواستم واقعا به و پروژه آبالت بشم ایشتر نگاه همون بود که و اینکه به همان درخواستم اجمه بایدی هم کرد دیدن با چشم و حس کردن این حال و هوا و این فضا خیلی کما کمک میکنه این خانی رو که یادش نگرد ما رو بیتک بکنه یعنی حتما یادش میکنه و در هر صورت ممنونم از جنوالی همکنان بقیه دوستان هم اگر نکلی بندگی هست گاهنم خوب بله خیلی ما توی رو دو جلس ها دوستان هلا و من هم که سؤالم رو پرسن خواسته اگه سؤالم میخواهید رو پرسید بپرسید در این میذاریش مالی مالشاتی ما این فرایند بسیدن ایشون هشت ماه تو کشده <سئل> نه اونم محتله شده اره، ولی آقای خانی اینقدر دیگه ما رفت آمد با همینی رفت و برگشت های سنگیونی موضوعات داشتیم و یه معلوم مثلا بعد کرده بودم حقیقیشون گرام کرده بودم هشت ماه ما تقریبا هر ماه بعد حالی مرابطه رفت آمد به موضوع داشتیم طرح. آقای مقدس صدقه خواهی اشتاری سات یہ سر بھی بعد میں عذاب جو دوڑ کرتا ہے نہیں ہے انشاءاللہ بعد یہ اپ الحسن عمر رفتوں میں گئے سن جوڑے خیلی بخشترنگی چیزی بود که به تایی وقت چیزی بگران رو بشه اگر که باید برم با malaی... بگران رو بزنم من اشخال خمان بگم من که شد چند تو کشم بودن اول بردرفتن دورشون بکنن دور رو برگشتن نمه بازید اول بردرفتن ماشه باشتن ببکر بشتران بزردیم بسم الله الرحمن الرحیم رحیم یه قدی که شما از سالی که و ما داریم که خیلی as well as to the I you know, then. از این برنایه هم میشهدیم با رو بخش رو برید با جرد بگیم باید هر وجود دارد تو از یکی چه در روی که بخش شده این از اقتصاد میتونیم بیشتر از اون با براسی که بیشتر به با رو و بعدی در موزی تجاری، موضوع تجاری، موضوع تجاری، است و تجاری اینجا گذاب بود، خیلی میروند که اینجا خرید کنند موضوع تجاری، جز کردشیدند، در عشت. در با ارز اقتصادی ها که داشته آیا او قابلن فیل شده برای بردام کنال شما نیست یا در حتی از این موضوع دارید و این موطیعات ی از حالیت که بردام به فرادت خوده باشم بشون و یا نقطی دیگه که این اتقاق خیلی در اما یک بخشی از اون به درقیقی طرف بدیم دولت خصوصاً هر دو دولت 11 هم و 12 و هر دولت یه سال آخر برشو بهم بکنیم دست آنوان خواهشو خصوصاً با این همین آنت های به خلال ساله ساله داخلی و خانیزی که احتمال بیشتری به این حوض بشتمشین از خصوصا روید باز این شما ما که خیلی کارا دولتی همون توی شما روید برنامه از بزشته بود در اینکه هیچ کده باشن در خواهده من نشده جدی به ایشون روید زیر صفحه شد طبیشه نشد ولی الان اتقاب افتاده شما روید باز ارز و کلماتی راهن داره این جمعیت در این قلود واخر جدی در ایش میره پولاد زیر براشد بسیار داره میره توسه چی میخواد؟ دیگه همیداد مخواد؟ منخلی همین موجود یادی مختلفی به اینها ها حتما باید رستردسازی کنیم و باید بیان کنیم منخلی توی برانگوی قدیده که در منخلی مواد در صورتای کنیم کند شده میشه و بس سر باید باید باید باید رستردسازی حتما توزی مادیریتی شما را را همون دقیقه اولیه شماست که تو این نصیر پیدا کنید بعد دقیق برده یا اینو متوقف کنه یا حتی بنامه خود شما های بذاره برای خیلیت رو در تا مهم بده این مستندسازی، این تسبیت این اتفاق برای این نقطگزاری دقیقه شما ها اینجا خیلی نظر ضروری است در تزمین تداوم این حرکت برای برای و خیلی شاید اتفاق سرنایی های بید مختلف درستانه در کشمان میدنه به هم هدم همین که بود رسالیت که میدرم همکنش که هست آمد از همه اینا من میکنه ما دقیقه ما هست که با مکان توکر دیگر دیگر تون برایدن تویید که بوضیر توسعه احطانه مسترلیستی به نیخلی بازی رسالیت واسعه مکان که ما بسیاری افراد سرعتی که دیدم و انگیزه و سرعت داری پیشوگری و خیلی مطابق بود که در جرس به من با همون سرعت همون انگیزه به نظرم هفته دولت رو غریبت بشوارید و مناخره حد دعوت دارستانه ای ایران یا پیشوگری بی جنرائی همجمت درستانی دکی بعد از این سفر محطمت بسیاری باستان از این تصمیری باستان از این بکر کنید باید کنید با خواهر حالا امورو توی حفظی دولت درستانی درستانی کنید باید که کار سوی مشکل رسید باید که از این نظر شما کار رو عجب دیم نمات که وجود که مقداری کما از is really خوزه که مجموع در اجتماعی فروتی در روز داره به خود رنگ انجام میشه دردش کمتر بیان شده که اگر بطور روز فراگت هایی که رنگ را بشه را بگرستی موقت درامی بیچه قد تراش کردیم سیگه ها شما رو بزنیم این فایده نداشتن قد موقفت الان وقتش رو بینید شما اصلا خودی صحبت دارید کنیم شما صحبت من نمیدونم چکای کردید بایشون خود اصلا اسم زادت احمان راییم حضور جنبالی دکتور نورسکو جنبالی مهندس شفیلی جنبالی و از این اولین سفر استانیشون رو به دورترین و با ترین و با ذرفیتترین استان قرار جای سپاس و غربتانی داره از میرمان نوازی جنابای دکتر کردی که معمولا نوازی نوازیشون و همکارانشون زبان زد هست هم به سبب مسئولیتشون در منطقه آزاد هم به ارقه در اینجا که مهمان رو حبیب خدا میتونن بسیار عجب میذارن برایشون من تشکر می از جناب دکتر کردی از زمانی که آیه دکتر نورس کرد دکتر کردی مسئولیت اینجا رو بر عهده گرفتن ارتباط ایرنا با منطقه آزاد چاوهار ارتباط صمیمی و نزدیکی بوده همواره و هیچ وقت ما مشکلی نداشتیم در ارتباطاتمون، در تهیه گزارشاتمون، صاحبه هایمون الحمدلله این ارتباطات و تلاش هایی که سازمان منطقه آزاد در حوزه های خارج از خود منطقه انجام داده که نمونهاشم حضرت هایی و همکاران ملاحظه فرمودید در حوزه های فرهنگی، عمرانی، تلاش هایی که انجام شده واقعا جای کار بسیار زیادی داره اما با وجودی که ما تلاش زیادی می کنیم متاسقانه تعداد توان نیروی جوابگوی این همه وسعت این همه کار و این همه تلاشی که نظام و دولت تدبیر امید در منطقه انجام داده واقعا نیاز هست که حتما گروه های خبری اعزام بشن و تا بتونن کار وسیع اینجا رو به تصویر بکشونن من مجددا تشکر میکنم از سرکال خانم نوری که حمایت خیلی خوبی از ما کردن همواره حمایت کردن، راهنمایی کردند، کردن پیشنهادات خوبی که فرمودن تونستیم به خوبی انجام وظیفه بکنیم من از جناب آقای چاکرزهی جناب آقای مقدس جناب آقای و جناب آقای صدر و معاملین محترم آقای دفتر کردی سمیمانه تشکر میکنم انشالله که این همکاری ها این ارتباطات بتونه بیش از این استان رو و مخصوصا منطقه چابه ها رو به تصویر بکشونه. اگر در گذشته بزرگترین دردغه استان مسائل امنیتی بود، الحمدلله الان دیگه مسائل امنیتی نیست. الان نگاه نگاه ترسیم و بیان ها و هاست. ما چند سالیه که کارمون رو تو این مسیر قرار دادیم. امنیت رو زیاد بهش توجهی نداریم چون تامین امنیت شده از هیچ مشکلی وجود نداره ظرفیت و توامندی استان را هدفمون هست که ترسیم بکنیم ذهنیت هایی که برای اون از این استان به وجود اومده اون ذهنیت های تار و کدر را تغییر بدیم انشالله نکات روشنی نورفتن های بزرگی از این استان در افکار عمومی، در ازهان عمومی ملت اون انشااءال الله که ترسیم بکنیم. مجددن از همه عزیزان سپاس گذارم. چه برد در مورد ماهان احسابی دونم خیلی همکاری خوبی داشتن و همیشه با رمایت من تشکر بکنم و از دوستانی که در حال اینجا حضور کدار کردن یک دویه سپاس منون شاید کنم من از آلیه یوسفی تشکر نکردم آیست یوسفی ارتباط بسیار خوبی ما با های یوسفی داریم ایشون را همیشه زحمت میدیم و من واقعا تشکر میکنم الان پایده نداره نیست چون نبود نتونستم یادم نبود که تشکر میکنم да دکتر کندی بباشی من یه چیزی مونده برای من خیلی جالب بود آقای دکتر نورس بود. تو اولین ویبیناری که ما داشتیم ابتداعا ترکید به چابهار داشت. حضور همه همکاران روحسای مراکز بود از بین استانها و شهرستانهای کشور ترکیدیشون رو منطقه چابهار بود و این نشان میده که خود ایشون ایرنا چقدر توجه خاص داره به این منطقه انشالله که ما هم بتونید رسالت اصلی اون رو انجام بدهیم بهشون میدید که ما هسته در بازر یادی چابار تو ایرنا محفر کنیم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آقای ظریف اونت من بهشون گفتم که یکبار که باید که چیزی با هم از میشه هموندار شوارم همین به مذاکره هست مثلا این جوهارم گفش کنیم همشن با مکشیدیم با گفشید ما رفتیم مذاکره کردیم چابوار از دریم خارج کردیم شما کمک خواستیم میگم شما کمک میکنیم حالا های سرایل ما چابوار خلاصی توی این ها جا کمک میخواییم برای شما استان هم جا میندزیم <تصفيق> خیلی منچکی رو ممید دوستان اگرمه شما. آمون از شما چیز بیمکنیم بخواهم نوری صحبت که شما هم میسید اما خواهم امشه صحبت هم شما خیلی همون دکتور مانجر و ستراخان حقوقی خیلی دوست داریم من خود توی این موضوع و در این من فقط بسنده می کنم چون خیلی برود من معنی پیدا پیدا پیدانه می ویژه می کنم برای نگاه ویژه توی ملی چابحار نگاه می طلب نگاه ملی ویژه به چابحار رو برای این هم لازمه که ما بایدیم مطالب گردیم می داشتیم شاید مقدار اینقدر در تعریف تغییر ها و ها و نوشتار و اصول اساسی منطباز بودیم فارغ شدیم از این موضوعات که بپردازیم به شناسوندن این اقداماتی که واقعا شاید بعضی هاشون الان مشهود بوده قابله مشاهده بوده شما سربرا ما سعادت داشتیم که به شما اینا را ارائه کنیم ولی خیلی هاشون اثراتی دارن که الان مشروط نیستن مثل همون مسئولیت اجتماعی که نگارش شده ولی واقعا راجعش خیلی زحمت کشیده شده ولی موضوع اساسی و اصولی است بگید چراغ راست من بیشتر دوست می‌داشتم که کاش این قسمت حالا حتما دوستان تخصصاً که با آغازرات جلسات دیگه داشته باشن در کار تخصص تخصصی تعاملات ویژه بیگم من خطرن نخواهم که ما ها مثل پزشکا میمونیم خیلی دوام میکنیم که گذرش به ما نیفته خیلی خوب نیست گذر به حقوقی ها ولی خودم این قسمت رو هم اضافه کنم حالا خدمت همکاران گرامی چه بهتر که حالا فیلم مجلس عرض کنم بعضی از اصلاحات اقدامات مشهود نیست اثرش اثر پیمانی و سازه‌ای و ساختاری نیست اثر مطالعاتی است و دوست میدارم که دوستان حتما های محترم بعضی از معاونتا مثل معاونت توسعه مدیریت چون بیشتر امور چه پشتیبانی رو انجام میدن ولی کارای مطالعاتی بسدی انجام شده حتما اینها رو هم در پیششنه خبرتون لحاظ بفرمایید یا حالا ما خودمون توی تنقیه قوانی، توی اصلاح قوانی، توی نخواست برای اینکه قوانی برای تصویل و تصویلی باشه اقداماتی کردید اگر اینها رو محمد نظر بفرمایی چیزهایی دی که مشروب نیست و سازه نیست من ممنون میشم مجددا تشکر میکنم برای اینکه چیزی که گفتی انجام بشه برونا پشت درمان برو کمک برونا شکر باید برونا برای اونجا برو تنقیه کرد بر بری برای اینکه این که من حلش کنسلتار بیا آنلاینم محدرس یعنی کی سر دو دقیقه ششایی گفتم نه بره همین حرف بزنه بعد بره که دیگه خلاصه کمک بکنه خب شما چندهره شما میخوایید دوباره چارده مثلا دوازده همارو بکنیده ما آشده ها سواط بگم هش مارو هش یه هش آمده داره آمده کردید؟ من فکر کنم اشعالا اگر با همی فرمون بریم یه رکورد رو تو بوزه فرودگاه کنیم. کنید چون الان کاری که در انجام میشه در چند جپه است دیدار پیمونکارانی که پر کاب شدن همیشه یه بدبینی نسبت به با باقرارگاه وجود داره منطقی این قرارداد اصلا هیچه اسم آثاری از قرارگاه نیست و برخواد یه تیپ بینید خود بچه قرارگاه میگن, میگن اصلا ما تا الان تشروف کاری رو نداشته. آقای محمد از وقت اومده تو قرارگاه اصلا ساختار رو تشکیلات قرارگاه رو به هم ریخته یعنی نظاممند رو قواعدش نتفاوت شده و اصلا مشتری نهبر شده قرارگاه همش به زور خودش کار رو پیش بگرده الان نه واقع پیش مولاد ما مروازی که پیش بستیم. قراردادی که در واقع دست میشه و دست روش به 5 تا امکان کار داره میشه ما در واقع یه قرارداد 25 تا قرارداده انا صرف به منظور مدام امروز یا مست شهید جایوند سومیش امروز اومده دو تا دیگه با باید اضافه بشن 8 تا و کار کار جوری تقسیم شده که واقعا هم نکای آقای چناندری اهمیت شدنی هستی مقداری بحث‌های مالیش مالیگران رو ما دیگران بودیم به کوشش بودیم مسیر رو پیگیری کردیم چیزی دنبور و کلمی نمیستی ها مدیر پروژه داریم مدیر ترزاریم شکل به زحیا مدرد که مدیر ترحص تیران شماله مجموع خیلی بکیم و خیلی خوب کار خودشونم جان نه نه اصلا خود همین باند رو, بان رو شرکت خانه گستره گیل در واقع به منکارش هر کش رو به یک مجموعه تخصوص چند تا باند ساخته خانه گستر بود؟ مرحبا بود در کشورد ساخته بود؟ باند دوبام محراوات هم ایش رو ساختنه؟ مرحبا بود در کشورد ایش رو ساخته بود؟ یا در چنده من کارش خودم دیگه همون رو زربت انجام بوده همون مجموعات رو هر حوزه مجموعه یک خیلی خود شداریم برا همین خیلی امیدواریم که بتونیم شما شد برسیم شما یه ما داره محتمال آخر دولتی کاری بکنیم که برای دو تا مدیر هم در ما کار بکنم وقتی بفاظه اینجا رو به با哥م... اصلاً و بعد من گفتید لطفاً دکتر هست تشکیل دادن واقعاً ارزش می‌دارم حالا خریدتون خوشش از هر خوان نظر نمیگه می کوشش نمیاد داره واسه ما داره واقعاً اصلاً مطلب می بچون خوش و بهکواتیشون باعث شده که تیم مختلف جمع بشن و طراواقع با منو من خودم واقعا خیلی نگران بودم از تو خواهش میکنم که این کار نکر. چون به پیماناره دیگه میتونیم یه دادی سرش بزنیم ولی بخوام داد بزنی من میتونم ولی انصافاً برنامه و استراتوشی که خدا را دهد کنه تحریکی هم و آنها تو داری دوتر محمدم تشکر داره برای حالا برنامه اتفاق می افته که فکر می کنم انشاءالله در کشوری رو به زده بشه و این اتفاق مهم بسیار مهم انشاءالله اینجا به سمر برسه دو بود بایی که 22 سال پیش دو اشان را می دهد کنم اجنل خمیرو 22 سال پیش من مدیکولو فوتبال استانی سامالوش است. من تو در اون آدم تو همیشه که امروز چون متشویلی ساختن. 2000 می‌تونم اونجا ساختیم به مدت 5 سال. که 5 سالی ترینال بهره برداری بشه برادر 5 سال فوتبال زنی دوست دارم. 22 سال نزدش نی فوتبال پیداست بشه. ولی جدیات رو فیلیپو دری بذاریم که در کردی و جای تاشکند را لازم مقرر کنم واقعا همه نمایت کردن وقت پیمان سه ماه دو نسی و پروژه هم یک ماهی شروع شده یک ماه هم 20 روزش تجمیز کارگاه بودشت و انتخاب پیمانکار کارگاه بود به این فعالیتی که شما انموزیدیم ده روزه کلنم مورد ده روزه شروع شده و انشالله امیدواریم که ی رپورت صدر شورای شهر ماندگار يا ما که روز شما برای پروژه نязаشتیم برای شما گذاشتیم ما چرنده. سر دو پروژه 12 ما با از ما هر شب می می‌دینیم و سشنبه به سشنبه نهما بعد جلسی شما ساعت هشتی دوستان براره بیاد همه پیمون کارها و مشاقبها بودیدن مودیت خیلی در که به انجام قرار بزب ما رو هزید کنند تو در ایران کشه روشت بکنه ایران و با منطقه بزب مخالف کنید از کنید از کنید سال, سال و سی سال دقیقه آقای کیان رو من این هر دفتی بیرد این رو من دفع آخر با تصویر خوبی اومد من خوشبارم من نگران بودم خلاصه من از تمام جلسه از همون لحظه اولی که شروع کردی من داشتم رسل می نگرانم نگره بودم که خلاصه این کاریه یعنی به مشکل بخوره خوب الهندو اداف کنم این چند دقیقه وقتی به خانم بردستانی داریم کمک کرد بسیار خیلی متشکلی دوستان اگه نکتی جا مونده بگید من چند تا نکتی که شفی رو توضیح بدم اگر که قبلش کسی من دیتاره خودم هایی نمیخواهی چی را شما قیدید شما هایی دیتوشتن خواهی مقدس های شما چیزی بگو دیگه جد دراستهی نباشتی دو جانبه باشید دیگه خواسته نه همین اتفاقا این اینه که من دیدم نگران شدم معلوم او به کاراش خیر است ان ارز کنم خدمت بله بله شکر اگر فیلی باز, باز باقی بود خوب ایدیتور خیلی خیلی داشت، شما نگیدیم بذاریم بیشتر اینجا جلسات رو که دام هر جدیگه اینجا بهتره که برناب بیشتر از باز بیدوها از درگیت. اینجا شبای مرداد ماه شبای خیلی خاصی دمهای کرده و بیشتر درجه می منسون شعبار هم کرد. مثلا تو مردادمه شما بگید به من از من حقیق بخصه که به شعبار سفر کن میگم مردادمه یا شوخی می کنید. واقعا دفته می فست به سفر شعبار چون همه جا ما دیگه با عج بسیده در شما در ماهی خیلی خوبی رو محسوس هست تو شعبار در دیگه نه بند رباس رب نه نه دشگیش کجا با قابل نه شما در شعبار واقعا شبای شعبهای فعلادهی رو تجربه می ما هر ساله این کایم جهشوارهای خیلی مفصلی داشتیم که اپسال باید برقاق داری ما هر رو در برمومن در صورت خیلی مختصر من چند تا نقطه دوستان اشاره داشتن ای میدم و خیلی برقیهش رو بذاریم توی دامه موضوع برقاق شده کنید کنید خب شاره خیلی درست و, درست و, درست و درست سرنگیون گردشگری یعنی ما با هموندار که سرن مهم بود که بودی برچه سوال های من اگزار باشه همونقدر که مسائل من به بوزه سرنن توبه چوشیم رو دوبار کردیم بسای هرهنگی و گردشگری در کردیم ما در سال خدمت شما ارز کنم نمید و چهار اگر اشتباه نکنم نمید و سه یه روز در و هتل بیرمنو هتل بود که تقریبا چند ساله اون بود و برنامه مشهور خیلی با که بازاری بود با یه دونه اون سازمان بوده و نصب هستند شهر اسفوردیش هستن الان تقریباً روزی کمتر کمترین تعداد پرواز ما چهار تاست روزی بعضی روزا 6 تا ماشین و هتل هامو الان تقریبا 15 تا هتل و یا این خادر این محدوده پرواز شما اومدی بیرید. تقریبا نسبت هم فول بودید. تازه یک پرواز صبح، پرواز بعد شروع کردید. غیر مستقیب بودند. یا می رفت بند رباس، اومد چه آبار؟ یا اومد زاهدان می اومد چه آبار؟ ما دو تا فقط پرواز غیر مستقی زاهدان، ایران، ایر ایرکون و احساس هم با هم همه فرمون قبلی بیادیم. تقری <متصفح> چرا؟ شرت جهت شروع کردیم، که تسلیمانه پاسپورتیم به همین جایی می‌برم. علیه ناوافه ما عمره هم آنجاست. دو تا اپدمی گام میزیر کرده. ما جد مال چابهار و همین گرفتاری متأسفانه هم مقدار معترمون ولی همزمان با پروردان شراهی چلندر تیمشون دارن تلاش می‌کنند که ما حتماً به اگر اعلام رو ندون را راه بندازیم تحت چند تا واقعه ما بدین بزنیم. خرید رو به جت دستور کارداریم کارا مثلا کاروزان یکی از این اعلان ها چابهار مستنده باشه با با بیس چابهار پروش با در جور برمان همه این هسته این رو کنگ بکنه بله بل بل حالا بیشتر از این بگونه با یه از بره در تو دو روزه محسن. کنارک اونارک ادمی عادت تا آزاب خیلی بیشتر از اینم تا موزهمون رو برگزاری کنارک بنا بودنشه واقعا دلیل محدوده برای برام اینجاست می کنه که نمیشه بیشتر از این اونجا اه... کار ریشتر کنیم اه... حاصلش این شده که همین الان که خدمت شما صحبت دو 20 سالی اونم تو منطقه چهار شده در 9 تو در این سال و مجموعه های گردشگری مثلا اون پای نشیستم یک رو کردیم در بحثی که داشکدیم انجام دادیم که الان تقریبا داره واسه سرموزرش میمیره و بعد داداش داره منقل میشه یعنی ما مثلا ظرف سه سال آینده یعنی واقعا دنیای متفاوتی گردش گیر در چابهار دیدیم تفاوتش باز با بیشتر با کیش و اینطوری واقعا در حد احساسش در سطح نسبی تخریب سادیلی گسترده‌ای داره با تقریبا شما درک شروع می‌کنید که بگردونید اون ریتم از اون صورت که شروع کنه تا بوت چابوار برسید اصلا این نوار ساحلی دنیایی دنیای خاصی ها آرامش از با با دشتری دشتری اه. اه. ای چاوار رد میشید و موقعی که قدر بزرگیه، این متاواز در چابوار هست، یک کش بکناره که یه کوچولو باید به جای فهمانده با باید باید باید فهمانده رو تنظیم کنیم با یه نفر خوب میشه تنظیم کرد دوتار هم یه جوری میشه دیم مثل امروز یکی هست یکی نیست خلاص ما یه خودمون رو حل میکنم منطقه تاشون با هم بشن دیگه خیلی بارد ولی خب در هر صورت این امکان و زنفیت برای بحثای طبیعتی هستی خصوصا باز از اون بکری یک فرهنگ مردم میگوستیم نه با چهاره؟ مثلا ما پارسل جشواله قضاقی بزاشتیم مثلا یکی سر صدایی بپا کردیم قد مراجعه زیاد شد که بذارید دارم دوستان دارن کتاب همون مجموع قضاقار رو دارم با امای مجموع کتاب منتشب میکنم برای اون توی بهمم رسمن دوباره دکتار باشید که اینپورد نمی کنم به عنوان اینکه جشباره های ثابت مخواهیم میبینیم و بیرونه این رو شکل برهن کار بله ولی الان داریم مثلا به و اصلا خیلی خیلی بکنیم زنم اتفاق بزرگو یا مثلا تو وضع گردش کردیم باز رو بحث سوزندوزی و صنعه دستی ما مطمئن رو صور این کردیم. پار تو جشباره ما به با روی جا بر با افتاده که اونا خیلی مؤثر یه مثلا خب ما هر جوز کنیم شابه مسبب کردیم ما فقط سوزندوز یه چیز دیگه ایدیه تو شابه و موجودند سوزندوزی من رو؟ نه؟ نه من خوب خب روی کار کردیم الان روزه یه وقتی مثلا به اسراباد گفتیم که آقا شما استفاده کنه مثلا خانمه همان من خیلی جاها میبینم و سنسان هیچ مناسبت این مرادی هایی کسی استفاده کنم. مثل هیدی بود که از اینجا بود بود من میدونم که مراکزی در تهران هستن که سفارش کار میدن به اینجا همیز بزن توزیار رو روی لباسه هاشون و منطقه میدونم لباسه دارن کار میکنن و خیلی داره باب و قایج میشه نه اینا همه معطوعتی که رو این مصاری فرهنگی و کردشگری معصر بوده خب هم به ترسیمانت را بوده بوده توی هم توی بس آموزش و کارشون هم توی بس بازاره بوده کنوششون نماش کرده بوده بوده خیلی معصر بوده و این طبیعت با این ذرگیت ها و با این امکان ها جشم را نه نه فرا رسیدن به زادلت شیخ و مورد شما کنم که در حوزه موسیقی هایدرو ما که کار دقیق از پارسا شروع کردیم بعد نیست میگم به جناب الی اعتماد پارسا ما اعلام می کردیم که آقا هر این فیلم ما شد و این مدل خاص به سازه ما کار میده در من در واقع این سیستم ایشی است یه راهو مخرب اونجا همین که ما از بعد هر فکری که داخل سیستم بهش ساختن میشه توش خشونت شل نه فر و مواد مخدر نباشه مهم ها و الان خیلی دو بار خوب درس ساخت میشه در پاسخ به اون نه در پاسخ شد خوشی مرسکان داده شد. پروانگی رفتند. کار بسیار مطابقتیه که از تصویر و یه تصویر کامل هم متفاوتی رو از برچسبانیشون خواهد داد. اما دیگه تو پیش که ما نداریم، فراورش زودی انسان تکنیک حفاظتی میاد برای شروع کردن، لکش نشون کارش رو و انجام دادن در انجام میشه. یا مستردات دیگه ای که تهیه شده رزرو زنیم. مردم اینجا انسان ما اواردی از این دست ادار خیلی زیادی فیلم و, و همه موضوعات این چیلی رو حمایت کردیم دو بخص برندی به اینجا خیلی وقت رو داشته کار کردیم همیشه هم داره کار میشه به نظرم سمت سو و مسیر خوبی رو تعریف کرده داره پیش کرده ولی نماغ، نامحامی هستیم لوکیشنش هم اینجاست و موضوع موضوعش هم یه موضوع کاملا برای چیه؟ حتی زبانش، عموماً بخش آمودهش زبانش بلوچیه فیلم کاملان، اولین فیلمیه که بعد از انقلاب کلاب در اکتباط با بلوشستان ساخته میشه و یه موضوع غیر میگم، مواد مقدر و فر و خشونت توش ازش کدوم از داستان و عشقانه خیلی و خاصی از بازم متفاوت از این فیلم رو بلوچیمی که برما ساخته میشه، به نظرم کار خیلی عرضشمندی، حالا شرابیت انجام شد. یه سال گذشته هم فیلم ارکا رو خانم عبور خاصیم همینجا کار کرد. یعنی لوکیشنش باز باید اینجا بود مجرد. من خانم اون خانم از اون خانم, خانم, خانم از اینکه با دست وست که شناکرد داره کرد بگینست و آخر اینکه نسرش رو در چابه ها تو همین خریج سبت کرد و خب انم روی ساید بگینست هست و وقتا انجام شد. ما از این دست کارهای غیر از نفضا هم داریم نمایت میکنیم که حربیه پول احمد مدت آثارش بر برنامه 30 سال چه سال ترکیه بین تاثیرات و پروسه ایجاد شده از ده بردنش با یه متغیر موازیه مشهود که همینش استمرار رو داریم جایی بخواهد. تو بحث دو توماسی نقطه دیگری که جناب اشاره کردید در مجموع اقدامات دولت من فکر می‌کنم آقای ریسپی اگر ماجرا برنامه‌ریزی بکنم می‌دونم برنامه برای هفته دولت واجبه لازمه که به زمان مرور هفته دولت ماست. نفته دولت سال آینده دید که ما ما نیستی و هرچی بیدیم کسی در روی این اردامات چندین ساله منطقه رو آشری یه و برحال یه باره بیروی تیم هرفویش شما بذاریم با هم یه ویژنامی رو به نظر من هم با مشترک ایرنا ایران و منطقه درباکارنوی کاری بخشش رو بروابه روی کانال ایرنا و رو هم صورت بیژنام مثلا در داخل ایران بیاد و خب حالا بحث دیگه این که شما تو مجموعه مستنطسازی که توی هم لازم دون میشه و میتونی کار اینجوری انجام دیم ما بحث مستنطسازی رو حالا به تسبیت کارهایی که انجام میدیم اونا رو سعی کردیم آیه شفیه خیلی ما برای مطالعات و کارهای مشابهلی و مستنطسازی خیلی کارهای اساسی و بونیادی ما برای نقشه هم رو همه رو جیازی. الان همه کار ما رفته تو جیرا هست مثلا زمین میخواد انتخاب کنه سر روز رو نقششه سی که یه بده و بعدا اونجا هم سنزنگ چه ما بونه ندار داشت تو سیستم یعنی یه جورایی هم ما که سیستم کار می بعد از من سن کسی کنه همه چیز رو در سیستم حتی اگر ما مال بکنیم ما داخل سیستم میکنه کار خیلی خیلی از فرآیندها رو بدیم روتین کردیم که تو همون ساختارها برای این پروژه ها مثلا شما گذشته منطقه رو متاسفانه نگاه بکنید به اختضای دوره مدیریتی که برای پروژه ها همه هم نیمه کار راه شده. من مثلا نگاه هم مذهبی بود اومدم اینجا مسجد شروع کردن نفر بعدی اومده ورزشو میده بود شروع کرده نفر بعدی مثلا راهی بوده راه رو شروع کرده بود یکی اومده کار شروع کرده ما اون وقت اومدیم بیدادیم هم جور تف پروژه شده همه جا هست اونی که مثلا من به کشاورتی این بوده شبکه یه رمیدیمم <the modern and stagnant> ما بیاری ما اول ما اومدیم اون ما هستم بیشکار این اون سال انجام بیدیم نوود و پنج و نوود و شش نوود و ما بیشکار نیش کنیم با این بیشکار جدیب شده بودم اول همین کاره رو در واقع یعنی تحت فشار از این بزن. همه هم پروژه تموم که 15 تا پروژه بود تمام شد. اینا تموم کردن بعد رو باز 6 ماه یک سر میگن کار بکنید. بخاطر فقط اولویت بندی کردن مفاهات و رقابت بودن کنیم می‌کنه پروژه رو عقب بسازه. یعنی ساختی رو تعریف بکنیم و تقریبا از 9 هفت ما شروع کردیم کار کردن و تا اواخر نمیتونیم که الان رو مستان هنکار در نه از سال نوت تا نوت و پنج شست و هفت ملیار تومن کار امرانی تومن تا حضای چاپار انجام شده همین هرم که خدمت شما هستیم هزار و و سد و سی چار ملیار تومن هزار هزار رسال 17000 رسالتی که من یه در اعداد قابل مقایسه نیست بخدا هم بزرگی هستند. هر کسی دیگه هم مشغله. آماده سازی نمودند ارتباطات در از 14000 اختار اولیه منطقه فقط حدود مثلا 800 درشت تهند داشته هشت دیگه یه جنر هسته همین مدت همین رو جدولی بود رو این جدول هزار این خیلی جالبی با این ان دروا مقایسه فجاره می هست همین طرها با نقشه راهی که گفتی مستن سازی طرهای یعنی های تفسییری دازی توی 75 تا 85 ۷ هکتار کار شده. 85 تا 95 ص 95 تا 98 9600 هکتار ما ت کرد. توی آمده سازی انددازی ه تا 85 ه۶هار، 85 تا 95 صرف پنج تا 16 هم برنامه که داریم زار بیست هکتار در حال قرارداری یه بیا تموم شده 500 خوردهش تموم شده برجه 1۶ هکتار همعمل دو دروازه خود تر اجر های طرح سازیمون 75 تا 8 5 و هکتار میشه 85 تا 5۶ 68 هکتار ۵ ۶20هکتار این ما مقایسه دوره ما با در دو تا ده ساله یعنی دوره سه ساله یا چهار ساله مقایسه. میکنه. اینا در واقع مجموعه کاره بوده که به نظرم مسیر رو خیلی شفاف و روشن کرده ولی پرماش جناب حتما لازمه که اینا مستندسازی بشه بمونه واقعا و یه جوری ثبت بشه که همین کارا در دوره‌ی دولت انجام شده و هم اگر کسی بعدی اونها خراب کاری کرد دیگه این نبود به خدا خدایی بعد خدام مشابهی اومده بود مخترم مشابهی اومده اینجا همه چیز خراب کرد اون منج به خدا اونایی که مؤمن گفتن اینا نبود اونم یه چیزای دیگه بوده اونم یه چیز دیگه شده. در هر صورت تو این زمینه هم کارای انجام شده و برکال داری دوبار میکنید برماشاد که جنابای کیا خوب بودن پس کتابچهش هست ناکر بودن بله اونا فایلش هست، فایلش هست، کتابش هم هست کامل بودن چما کارای خیلی خوبی انجام شد اصلا شناگاه ما اصلا تو ایران واقعا یک شناگاه گفته ای که برکار کارواده بیاد بره اونجا مثلاً آمونیزای برابر جای بره, آقای بره مثلا مثلا نتیو فرصت استفاده کنن ندارین. کاربر میگه شناگاهی که واقعا می‌بینه که مفاز وسط بالاش مشترکه دید. مثلا رست مثلا رستوران مثلا انتظار و استراحت رو ناز اونم با مشترک استفاده میشه و یه فضای برای نگهداری غذا کام نمی‌دونم. مختلف توی بخشش که برای خانم‌ها هست مثلا دیگه هر چیزی که فقط شنا نیست دیگه مثلا مثلا ماساژ رو می‌دونم کار غذا و, و هر چیزی که مربوط به خانم‌ها هست اونجا پیش بینی شده. برای آقایون همین طور که شون نیاز به خودش شده که الان سردار دادش انتخاب شده و قرارداداش عقدش انجام شده انشاء شده. خوبه کارای خیلی خوب و بنیادی رو در واقع فکر کردیم و برنامه‌ریزی کردیم ان که اجرا بشن و به حتما اتفاقات خیلی خوبی خواهد افتاد. منظور مجموعه این اقدامات که هم تو کارهای شهری کردن و حال در قالب سری مجموعه های ا من بش میم پرونده عن پرونده مسئولیت اجتماعی یه پرونده عمرانی، ی پرونده تولید وجبل تولید ما خیلی هف ادعا داریم امشاب اصلا هیچ دمودش صحبت نکردیم واقعا چهره و نگاه رو تو منطقه ما عوض کردیم مثلا ما سر قبل از ینکه برحال دا دولت سال نودو دو توی چابهات ارزش تولیدات پنجا میلیارد م نبوده ما م از زار ملیار دو دو دو اعداد عجیب داریم صحبت میکنی این مثلا میبینید نخشه اکس های بوگل مال شهر صنعتی باست از سال هشتاد و شار رو بچه سال به بید. سال اکس های بوگل گرفتن اون میبینید تا آخر اکس هاش نیست دیگه همان یه سال یه سال رو بودید باز باید بوگل هم دعیم کرد اکس که باز مثلا از آخرین عکس هم خیلی میبینید اون رو از 94 میبینید چه هم. اون نسبت به دو سال قبلش تقریبا دو برای ها برشده تو بست ساخته مجموعه الان اگر عکس به روز رو ببینید که هست آیو سفرمی فیلم خیلی خیلی واقعا حجم کارها و موضوعات خیلی زیاد و اینا واقعا, واقعا باید پروندهی دیده باشه می در نام ک می خود کنم نیست، از در بست نیست کار میشه بسید، بسید، بسید، بسید، بسید، بسید، بسید، بسید عرض کردن خانم اما بهتر تعدیل که میشه که همون شد داره اون هست این آه آه. بس نیشه. بس نیشه. همه در باست این همه میشه کار کرد؟ توجه کناف خواهی شده، باقا ما الان من پری ویز مجمع تشخص خود جلسه این بجرد و هم دحس دردین استراتژی چیه ما از اروپایا کدوم بخش رو میخواییم به اروپا با کار کدوم کدوم بخش رو می با با ها کار کنیم هندا واقعا چیکار کار میخوام بکن آسنیانا کجای درمو بذریم با روسا کار بکن نه همه مسائل مهمی که واقع هیچ براش نداریم و اینا به نظر من همه موضوعاتی است که حال میشه اینا رو با یه سیاست گذاری و با برا مسیر ارا نگاهها خیلی دلیل اعلام کرد زنبرگ وجود ماهی زیادی هستند و این همچنین مطابق آن خیلی جدی هستند یا توی سیاست غزه دولتی ما تو همون جا سه متره چشنه پنجشیش نفر پرسپولیت هستیله هم دو نماینده سفیر ترکیه هم اینا بودن و اصلا ماستم اصلا کودرن سامپاده خیلی سعی دیگه هم تو ما شما گل میگیریم توی کودرنیم دیگه چهار بار اگر ما شوگری ترکیه ما اما درون فرصت توسط دست میدیم فرصت آسیمیان را دست میدیم فرصت رو مفتد دست بدن توان تو خاطر کلینیک دیا میتونیم بگیریم کامل. هر سراشو خوشی قرارداد دادیم. ولی اگر هم اول اومده بودیم اینا رو پخش کرده بودیم پروژه برای اینو شروع تاریخ کرد بودیم در این فضای رقابتی حتما متقابل می‌شد. چیزی که ما خیلی داریم خوش فشار داریم که مثلا ما قرارداد با شیمیا رو داریم خیلی خوش ما رو برای من آقای هندری اینو خیلی برند ما رو مثلا از چینیا بودن ما قرارداد با چینیا داریم تو فرودا یا مثلا با رو پیدا مثلا تو حوزه شینگاد تو حوزه مثلا هم با بلندیم مجموعه یاست که تو شینگاد مثلا با آلمان ها نمیدونم تو حوزه سن و نمیدونم معدن با ایتالیا یا هر کدوم اوقات یه فیلمی براش تعریف کرده یه قرمندی گذاشته تو این بحث ها موضوعات رو یه سطح تا برسیم در هر صورت سیاست گذاری رسانه ای اون بال دوم توسعه ای که من میشه اعتقاد دارم خیلی خیلی مهمه ما هر کاری میخوایم انجام بدیم اون بر باید این تصویر سازی و در دهیه درست انجام بشه بهش ازش استفاده کرد در این صورت من فکر میکنم ما توی فضضا خیلی خوبی قرار داریم پروژه هامون و ضرفیت هامون ظرفیت های خوبی است امکانات به خیلی خوبی محیا شده و میشود شود برق برنامه مشخص و مستجه هم اینجا رو تبیعت نشون دادن این ها و معرفی که این امکانش یکی از فکر نمیکنیم چا دا انجام میشه ما کاپون سی شما تو همین ایامکنرو ها ما برای حصه استور نمیشه داخل، می گونه با 100 درصد درصد باشه. همین نشه. تمام محصولات از داخل پاکستان صادر میشه. یعنی مجموعه الان شیفت دو اومده صدر درآمدزا راه داخله و منظور که به هر حال با یه استراتژی مشخصی ما رفتیم مارکتینگ صنایع کردیم. یعنی نگفتیم هر کسی میاد. ما مطمات تورباتی می خایم. رفتیم بدون کاتمون توربا تو پیدا کردیم، آوردی. تو صنعت دوشینی مدرن از پاکستان رفتیم گشتیم. تبلیغات کردیم اوردن مستقر شدن در برات کار میکنه مثلا به تو حوزه برنج حالا ما بحثای خیلی جدی چالشی تو دو دولت داریم گفتم ما ما یه ریال ارزش نمیخوایم به ما فرآورده و محصولات کشاورزی بدیم گوشت و برنج شما رو ما میدیم بدون نیاز ارزش مثلا ماجرا شده تمام مافیای برنج الان واقعا دارن زمین رو زمان ما خودشون رو میزنن آقا یعنی چی قماچ کار کنیم ما چی بنابراین که من 20 تا واحد فرابری برنج دارم اینجا برنجی می آماده از پاکستان میاد اینجا فرابری میشه حتی در هر تونی حداقل به 20 دلار صرفجویی ارزی هر کدوم از این 160 تا 80 نفر شغل داره کلی ماجرا و قصه دیه که به حال خیلی مهم و همی داره داره ما است. تو همین صنعت بنا 1600 نفر شغل داره ولی خب به اون طرف با تلفن داره اونجا مثلا سه نفر آدم درگیرشان داره کار میکنه این واحد توری باید تعطیل میشه. اونی که برنج آماره داره وارد میکنه ارج شورای ویستا در الحمدلله تعطیل شده قبل سال عرض شورای ویستی میدادن ببین واجد توذی میگفتند گفتن با موعده تولید. به یعنی گفتن آقا همه واجداتون رو تولیدیاتون رو تعطیل کنید برید کار واردات بخواد برام گرفتاریای این حسینی از این دست مسائل موضوعات خدایی ولی در هر صورت میخوام بگم مسیر ما الان تقریبا مسیر به شده یه روشن و مشخصی مذیت های رقابتی منطقه در اومد های اساسی مشخصی صمتع بالا استی روشن خوش رو تعریف کردیم که کدوم خوش ها رو باید توسعه بدیم چه فالیتهایی رو با برای کدوم کشور داریم کار می کنیمیم اینها بهبرا مضوع نیست که به نظر من در قا یه پرودای مشخصی اگر تبدیم بشه به نظر من خیلی خوب و بزرگی برای شاب ها رو برای آینده اقتصای کش هست ببشید شما دوستان برقی من بکنم. بیا ببینی چیکار کردی داخل آقایی سفی شما شما نمید که او یک پدر که لحظه دخترش را مانده ادکاره که دچارش نیز می‌شید که از لحظه